دلم مونده رو دستم هنوز ممتظر استم برم یا که بمونم آخه بد جوری خستم واسه دل بیقراره چشاک گیرایی داره دلم مونده رو دستم چی میشه بگی آره بیا قلبمونشگر نگیر عشق تو از من همه دنیا رو گشتم نبود مثل تو اصلا آهای آرومه جونم نظار تنها بمونم بدون تو نمیشه نمیشه نمیشه خفی رو در از دوری دلم آسیه آشقه دلم مونده رودستم هنوز ممتظرستم برم یا که بمونم مخبت جوری خستم وسط دل بیقراره چشاد گیرایی داره دلم مونده رودستم چی میشه بگی آره بیا قلبم و نشکن نگیر عشق تو از من همه دنیا رو گشتم نبود مثل تو اصلا آهای آروم جونم نظر تنها بمونم بدون تو نمیشه نمیشه و واسه تو میدم جونم و بزار روی شونم و آرومم کن این قلب من احساسیه اشقم بیرو در واسیه از دوری دلم آسیه عاشقه تو وزفاسیه یا تو هر جو بگی هستم و از دوری تو خستم و دوست دارم